فقطجه بفرماییم که تا بیت سی40 خوندیم بیت آخر این است که میگه که سه بیت آخر، میگه که آاوووس خوانددیشه شد و ناراحت شد از این ماجرایی که پیش آمده به دل گفت ار این یعنی سودا به راست گویت همین، از این روی زشتی نجومیت همین سیا را سر بقاید برید به دین سانبود بنده بد را کلید تا اینجا ما خوندیم معنی کن. ولی میخوام توجه شما را جلب کنم به این که ببین گفتم که داستان های فردوسی و داستان حسین کرد و همیرسالان فرق داره فرقش اینه این, این تا چه حد این آدم دقیق بوده؟ میگه که کابوس در دل خودش گفت اگر این زنک راست بگه سر بچه را برید اما مطلقا به روی خودش نمیاره که خب اگه این زنک دور رو گفت چیکارش باید کرد؟ مطلقا را جم سودابه ساکت دلیلش اینه که عاشق زنک بوده است و اصلا حاضر نبوده راج مطلب فکر کنه اگه این زن خطا کرد، اگه این زن خیانت کرد، اگه این زن دور گفت چیکارش کنم؟ فقط میگه که اگر اون راست گفت باسرسیو بشه بوری کنی. راست نگفت چی؟ این اینا نکاتی است که من خوندن این قصه گفتم به وقت که خوب داستان رستم و اسفندیار رو 4 5 بیت ازش توی چیز خوندم در وسط واضح میگه که آره میدونم دیگه همونش زاد با تیر تو چشش کشت <تصفيق> ولی اصلا مطلب این نیست مطلب اینه که جهان پهلوان این سررستم که تا عمرش در خدمت به ایران شده در آخر عمر چجوری روبروی یه شاهزاده ایرانی غیرو بر شدن با دوشکن وامیشه شاهزاده ای که مقدس شاهزاده ای که نیرومند شاهزاده که ولی عهد شاه ایرانه که رستم 700 سال خدمت این شاه ایرانه کرده شاهزاده ای که تمام عمرشو صرف ترویج دین زرداشت کرده چطوری راستم روبرومی این وایمسه و کارشون به جنگ میکش یا این اونو بکشه یا اون اینو بکشه این مسئله است که مهم و این که روستم زد کشتش خود یا نه اون میزد روستم این مسئله میمسیش نیست من این مسئله نیست مسئله است که چجوری این دو نفر کشیده میشن توی راهی که پایانش هیچی جز طلب سدن میکرد نیست و این تراجدیه توجه به این نکاتو من توجه شما جلب کنم که دقت بکنید هم به نوشته ها و هم به اون چیزایی که ننوشته شاید نانوشته‌هاش از نوشته‌هاش مهم‌تره کابوس همه خیالات رو درباره سیاوش می‌کنه ولی هیچ فکری درباره سودابه نمی‌کنه ده حال که مایه‌ی فساد و اصل فساد او بوده می‌دوندم همیشه بهش گفتن خودش گفته که پسر جان تو آدمی هست که کسی نیست که تو رو ببینه دوست نداشته باشه. میدونه که این فرقی ایزدی داره میدونه که نمیدونم انواع و اقسام هنرهار داره نه ولی بب. خب حالا یکی بخانه یکی از کسانی که نخوانده، چی از علمه ها چی خونده دست از خونی خواهد تو بخونوی؟ بخون بینیم خرد من مردم چگه اوید کنون خوه داستان که از خون کسی را خندر شبستان بودن خوشیوار و مستر پرستان بودن گوسی کرد و برگاه تنها به من. سیاوش و صداوه را پیش پند و خرد با سیاوش, با سیاوش بگو که این راز بر من نشاه گردم ها نکردی تو این بد که من کرده که من کرده که من, من کرده تو این کار، تو این کار بده نکردی من کردیم تو رو ترسدم تو هرم ز گفتار بی بوده آذرده هم چرا خواندم من در شبستان ترا کنون غمراه برنام در ترا همه راستی جوی و با, با من بگوی سخون بر چسان دفت به مای بود؟ بگفتن کجا رفته بود خوزان درد سوداوه آشرفته بود چونین گفت سوداوه این نیز راست که او از بودان جز تن من نخواست بگفتم هم هم هم. همه بگفتم همه بگفتم هم همه برچه شاه جهان بدودا پاست آشکار و نهان ز و از تاج و از ز دینار از گنج آورد دینار رو از دیدار... گنج آراست ز دینار رو از گنج آراسته به گفتم که چندین چند بر دین برای سر, نهام... سر یعنی هم بر سرن هم یعنی مهریه ما می‌ذارم به گفتم که چند دین سر سرن هم می‌ذارم روش همه نیکویی حال و دختر دهم مرا گفت باقواست کار نیست با دختر مرا را به دیدار نمی را باید از دین میان گفت و بد نگنجم گنجم کار است بی تو نکند مرا خواست که آرت به کاری به چنگ دو دردم آورد چون سنگ تن. نکردم فرمان همه موی من بکند و خراشیده شد روی من یکی کودکی دارم اندر نهان زه پشت تو ای شهیار جهان زبط چند پشتنش نزبیه بود جهان پیش من تنگ تاریخ بود خب خب احسن پایتالی نوبتا یکی یکی دوستم میرسه ها درستون رو بخونیم چه خب ارض کنم که اینجا باز برمیگرده خلوت میکنه اینجا رو باز همه نظرش طرف اینایش سی که سیاهش کار بردی در حالی که یه شاهزادهی به اون جبونی و به اون زیبایی هزار جور بسیده براش فراهمه و چه دلیدی داره که بیاد با اون اطلاعاتی که شاه هست ولی چون دلش به مهر سوداوه بسته است، همش اون برکشتی میشه کسی را خردمند مردم چه گوگت کنون این افتضاح و این فضاحت این رسفایی رو اگر بشنون مردم خردمند چی میگن خوی شرم از این داستان گشت خون خوی حرقه زول آشکده و خوی کرده و خندان لب و مست پیره همچاک و غزلقان و سراخی در دست نرگستش عربد جود و لبش نیم نیمشب دوش به بالین من آمد بگیرست خوی کرده یعنی عرقی دفعه پیش گفتیم که عشق خونین از کجا میاد؟ این عرق خونین همین این میگه که عرق شرم باید خون بشه از مبالغه شاعرانه میکنه میگه خوی شرم از این داستان به قدری افتضاهه که باید عرق شرم سرخ بشه من خون به ایزه بهتره و بعد چون از خجالت سرخ میشه آدم باز این عرق هم باید خون بشه از بس این, این داستان رسواهی درش هست کسی را که اندر شبستان بودند میبینی کس رو میاره به جای کسان کسی را که اندر شبستان بودند خوشیوار و محتر پرستان بودند حوشیوار همون حوشیاره فرق نمیتونه محتر یعنی دوستار شاه بودن دیگه دوستار عوضو گسی کرد و میگه همه کسانی که در شبستان بودن بیرون کرد برید تو کرد و برگاه تنها به ما شاه تنها رو ترخیش کسی سیاوش و سوداورا پیش خاند که دو دوتایشون رو در رو عرب بیرون. به هون شخرت با سیاه بگفت که این راز بر من نشاید نهو معروف خیلی و خیلی هم توصیه شده که به شاهان جز راست نباید بود. و باز گفته شده یه مسئله مسئله حدیث هندونه که ارباب و دوله ملهمون روحسای دولت ها پادشاهان الهام گیرند و این علتش اینه که نه اینکه شاه عقیده ایرانیان قدیم فرای ازدی داشته یعنی مورد تایید الهی بوده این است که رابطه‌ای هم با عالم غیب داره و الهام با الهام می‌گیره از عالم غیب این است که فوراً میفهمه که کیراس اون چی تو بود اگرم اینجا ممکنه به من ایراد بکنید که بچه‌ها رو کرکاووس اینجا نمی‌فهم ببینون جوابش است که این دلش پاک نبوده. دلش در بند مهر زنک بوده. است که هر کشم می اومده گفت که <تصفيق> یک آقای هست به نام بود یعنی هزار سال پیش. حسن معدب. این در خانقاه شیخ عبوسعید عبالخش سوتی معروف. اونجا خادم خدمت یعنی کار زنگیش گنشته بود. بود تو خانقا سارو کارو کرد و خدمت کرد و قصام میکرده و وقتی که ابو سعید مرد یه روزی به یکی گفته بود که من یک سری دارم که این رو تا وقت که شیخ زنده بود نمیخواستم کسی بگم حالا به تو میگم علت این که من آمدم و همین زندگیم گذاشتم و شخ شیخ ابو این بود که من خیلی با صوفی مخالف بودم به شدت شیخ ابو اومده بود یه جوانکی بود و مجلس میگفت به قول خودشون یعنی وعظ میکرد و صحبت میکرد برای درویشا ها و اینا در خانقاها خودش و خیلی هم شهرت کرده بود خیلی معروف شده بود و من یه روزی داشتم میراهدم خیلی هم خودم اون درست کرده دامو لباس شیک و به خصوص یه دستاری یعنی امامه سرپوشی از قصب مصری قصب یه نوعی پارچه کتان بزید که بسیار گرام بها بود دستاری از قصب مصری که یه دوستی من حدیه کرده بود و ده بینار ارزش داشت یعنی پنجاه گرام فلا اینم سرم بود مادم برم دم جای شلوقه گفتم چه خبره؟ گفتم که شیخ ابو سعید داره حرف نزد میگه من رفتم تو با دلی پر از انکار. این کار برای اینکه عقید اصلا آلم نیستن صوفی که عوام اصلا چه حرفی داره بزنه چی داره بزنه با چه همچی تصوری رفتم تو رفتم و نشستم و شیخ حرف نزد و ما هم یه گوشه نشسته بودم یه ستونی بود پشتون ستخون نشسته بودم و گوش میکردم این چی میگه تا حرفش تمام وقتی که حرفش تموم شد معمول بوده اونجا در, در مجلسای وعظ یا در مجلسای صوفیه اگر کسی احتیاج مالی داشته، گرفتاری داشته، نراحتی داشته و اون شیخ میشناختش، میماله به شیخ میگفته شیخ مثلا اینقدر قرض دارن یا یه همکی گرفتاری دارن یا وضع هم به من کمک بعد شیخ و واعظه های معروف هم که خیلی نفوذ داشتن همین کار میکردن آخر مجلس میگفتن یک کسی هست مثلا احتیاج داره فلان داره هر کسی میتونه باش کمک میگه شیخ گفتش که یه فقیری هست اینجا و احتیاج به مالی داره و گرفتاری داره و اینا اگر که دوستان دلشون میخواد و میل دارن به این کمک دارن. میگه در دل من آمد که این دستار قصب رو بدن باز پیش خودم فکر کردم که نه بابا این ده گینار قیمتشی 9 نو, نو هم هست دوستیم هم من آورده کشی بدم نمیده گفت دوباره شیخ گفت اگر کسی میخواد چیزی در راه خدا بده بده این آدم مستحقه فیلانه میگه باز به دل من آمد که این دستارو بدن بابا باز فکر نه بابا این کلی قیمت نو نونون چی بده میگه همین در همین موقع پیره مردی من نشسته بود از شیخ پرسید، چه یا شیخ، حق تا حالا با بندگان سخن گوید، گفت آری گفت چگونه، گفت هاون گونه که دوبار به این رفیق تو گفت که این دستارت، دستار غصبتو بده در راه خدا، و باز این چیز کرد و نداد حق حالا برای قصد دستاری قصب میشه از دوبار با مندگان سخن نگوید میگه این موجب شد که من به کلی اون انکار از دلم بره و فکر کنم که این حقیقتا مرد خدا و میتونه زمیر مردم رو بخونه و این است که آمدم و همین کارم در هر حال الهام میاد اما وقتی میتونه نتیجه روحش میشه که دل آدم در گروه چیزی دیگه نباشه اینو خواستم توجه بفرمین که اینجا که میگه که سخن از من نباید نب... راست رو از من نهخ و حقیقت رو هم بگین این مسئله خیلی مهمی بوده که از قدیم سفارش شده در باب رفتار و با پارچهان و اینا که در حضور شهان دوز راستی نباید رفت اینام مورد الهام قرار که کاغوس هم همینیم. میگه که به هو شوخرت با سیاوش بگفت که این راز بر من نشایست نه بعد بعد می‌بینید حرف زدنش ببینید که مطلب حقیقتاً چیز چیزه این اتف... افتاده نکردی تو این بعد که من کن یعنی بعد رو کردی ولی تفسیر تو نیست تفسیر منه که تو فرستم به حرم در حال که بچه چهار پنج بار اول مقاومت کرد وا من برم تو حرم سرا از دنیا چی بیاموزم منو بفرشت پلوی دانشمندان، پلوی پهلوانان، پلوی موبدان پلو زنان برم چیکار کنم؟ گفت نه برو، اصرار که برو با این حال، میگه نکردی تو این بد که من کردم بسه گفتار بیهوده آزرده یعنی حرفی که من زدم که تو بروت شبستان، این حرف بیربت که زدم و حالا ناراحتم که چرا این حرف بود این گفتار بیهوده اشارهی به اصرار که که برای رفتن سیاهوش در شبستان چرا خانده من در شبستان تو را؟ کنون غم مرا بند و دستان تو را راجب بند و دستان دو سه بار اینجور توضیح دادیم بگفتن که بگفتون که مرد شبستان نیم من که با بند و دستان نیم اول داستیم من بکره حیلگر بخونم و باقب باز بکنم بدون این که فکر این مشکل خب قانون چی همه راستی جویو با من بگو سخون بر چه چسان رفت به مایون سیابوش به بگفت کجا رفته بود کجا منی که آن کجا رفته بود یعنی آن که آن چیزی که اتفاق داده آن کجا یعنی آن که رفته بود یعنی اتفاق اوزان در که سودابه آشفته بود و این در اینجا معنی باب معنی فصل معنی مطلب برای که تو کتابم باب اول باب دوم باب یعنی در در کتابای قدیم گاهی می نیزن در اول در سخن به جای باب اول و معنیش این که همطوری که تو خونه هر دری بامیش توی اتاقی بعد اگه بخواد برید تو اتاق دیگه بعد از این بیاد بیرون یه در دیگر واقع برید تو اتاق دیگه مطالب کتاب همشون تسلای مختلف داره هر کدوم مثل در این اتاق میدونید اینو وام کنیم حالا راجع به این مطلب هر چیزنید بعد در دوبار باید از آن در یعنی از اون بحث از اون مطلب که سود آب شده بود و خشب کشد. چون این گفت سوداوه که نیست راست و کمال بقاها تو روی پسره میگه چون این گفت سوداوه که نیست راست که او از بوتان جز تن من مخواست و فقط شخص من خواست بگفتم همه هرچه شاه جهان به دودات هاست داشت کارونه ها گفتم که پادشاه چه چیزهایی رو حاضر به او بده آشکار و پنهان ز فرزند و از تاج و از خاسته یعنی مال ز دینار و از گنج آراسته چی خاست یعنی یا آشکار یا نهان داد خاست یعنی میخواست بده. خاست دادن اون داد مستر مرخمه خاست دادن یعنی میخواست بده به فرزند رو از تاج و از خاسته دینار و دینا رو از گنج ها راسته بگفتم که چندین برای این سر نه چندین مرکب از چند و این چند و از نظر دستوری بهش میگن عدد مبهم دادش از سه تا نه سه تا یا بیشتر تا نه تا رو میتونیم بگیم چند تا اندم به همین معنیست اندم به همین معنی کن وقت چندین یعنی این مقدار چندان یعنی آن مقدار بنابراین الان این چه ترتیبی که ما به کار میبریم در زبان خودمون که اگه مثلا من سه دفعه اومدم سراغ شما میگم چند دفعه اومدم سراغ شما نبودیم اگه مثلا هشت دفعه اومدم میگم آقا چندین دفعه اومدم نبودیم یعنی چندین رو خیال میکنیم که بیشتر از چنده یا جمع چنده این درست نیست چندین مراکب از چند به این و اگر روزنامه ها و مجله ها و حتی کتاب ها رو بخونید می‌بینید که بسیاری از کسانی که پارسی نیمسن اینو درست به کار نمیبرد نمی‌دونم نمیدونم فیال چندین از چند بیشتره حال که چندین چند چنده به اضافه این البته یه دلیش هم اینه که یه منون در عربی علامت جمعه مسلمین مثلا محسلین مسلمین فکر کردن چندم که پارسی البته جمعش میشه چندین درست نیست گفتم که چندین بر این سرنه هم یعنی این مقدار هم من میذارم روش. همه نیکوی ها به دختر به هم. دخترم رو همه این چیزار میدم بشه به خونه مرا گفت با خواسته کار این گفت باید اولیتون به ضرورت شعر اومده وسط میگه گفت یعنی سیاوش گفت مرا با خواسته کار نیست به همین دلیلم توی دوتا دشت دوتا خط رو دشته. هم. مرا گفت با خواسته کار نیست به دختر مرا راه دیدار نیست یعنی من کاری با دختر ندارم نمی‌خوام ببینم تو را بایدم زین میان گفت و بست باز گفت بگه در اول جنبه گفت ترا باید همزین میان و بست باز زیاغش میگه نه گنجم به کار هست بی تو نه کست کس اینجا قید نفیه یعنی هیچ کس مرا خواست کارت به کاری به چنگ هسانه بگیر. دو دست سندر آورد چون سنگ تنگ صفت منو گیرم نکردمش فرمان این درسته زن اگه نخواد خودش راه نده به هیچ نهبی نمیشه چیزیش کرد تسلیمش کردم اون کار مگر اینکه؟ مثلا اصل رو رو مخصر بازم خودش راه میده بایده نخواد راه بده میبوشه میگه نکردم فرمان همه موی من بکند و خراشیده شد توی من روی این کشاکش موهای من کنده شد و صورتم خراشیده شد برای اینکه مقابمت میکردم در برابره بعد محصله دوم که خیلی حساستره عنوان می کنیم که من آبستان هستم از علا از و, و این بچم هم از بود سخت بشه بعدا میگه سخت شد یه بعدا میگه سخت شد دو یکی کودکی دارم من در نهان در نهان یعنی در شکم هم, هم دیگه پشت تو ای شهر یا جهان تصور میکردن که سلولای تخم مرد در کمرشه به همین دلنم اشاره میکنم که فلان کس کمرش سفت مثلا کمر و بهش میگن سولب سولب یعنی چیز سخت مال مال مردو نوظاره تخم رو میگن در سولب مرد حالا میگن در بت میشه بت معنیش کمه سلب به معنی چیز سخته که مراد کمره ما برادری که از یه پدر از یه مادر باشه یا فاهری که از یه مادر از یه پدر باشن میگن برادر مثلا سلبی و بطنی یعنی هم از سلب یکی هم از برد سلب پشت، از پشت تو کودکی دارم اشاره به این مطلبه و حال اینکه حالا میتونیم که سلول توخ یعنی از مرد رو پوسته خارجی پیزه می سازه به خصوص پیزه چه و اون مایه صفیزنگ هم که در حقیقت مایه قضاییه برای این سلول های زنده برای اینکه پیش باشن نمیرن اونم پروستات ترشون. توی کمرو اینا ارتباطی ندهد خب یکی کودکی داره من در نهان سه پشت توهایی شهریار جهان ز بس رنج کشتنج نزدیک بود از اون نراضی جهان پیش من تنگ و تاریک بود برای چونین گفت با خیشتن شهریار که گفتار هر دو نیایند با کار برای کار ورد بر جای شدا که تنگی دل آرت را بخواهد یعنی تنگی دل که آف. تنگی دل لارت را بخواهد نگه کرد باید بدین در نخست گواهی دهد دل چگنده در درست ببینم که این دو گناهکار کیست و پادافره پادافره با... پادافره افره بود افترا بعد از بعد کی بلند باز همین همی راجاست ببوی ببویید دست سیاووش نخست بر و بازوی و سر و بالای اوی سر به سر بالای اوی سراسر ببویید هر جای اوی سسودا و بوی مے و مشک ناب همی یاد و بوی گنا نبود از سیاهوش،, از سیاهوش برانگو نبود نشانه, نشانه پسودن نشانه پسودن نبود اندروی غمی گشت غمی گشت غمی گشت و صوداور را کرد دل خیشتن را ز او پرازار کرد دل خیشت را دل را زو، زو پرازار کرد و دل گفت را به شمشیر تیل بباید کنون گردنش ریز دید زهاماوران زهان پس اندیشه کرد که آشوب خیزد از آزار و درد و دیگر بدان گرد که در بند بود برای او نخیش و نپی بود پرستار سوداوه بود روز و بپیچید از آن رنج و نکشاد آدند سه دیگر که یک دل پر از میخ به بباییست از او به باویست از او هر برد گذاشت چهارم که از کودکان داشت خرد خرد بچاره غم خرد ندوانست پرد بچاره غم خورد نتوان سپرد سیاوش از آن کار بود بگناد خردمندی او بدانست دانست شار ود گفت از این خود نه اندشت و خوشیواری و رای و دانش بسیچ و مکنی یاد از این نیز رو با کس مگوی نباید که می در سخون رنگو بود بسیار پقجر کردیم با تمام این احوال با دیوانگی کافیست داشته و با مهزی که در فرده با این حال اینجا یه خود دقتی میکنیم چون این گفت کافیستن شهریار که گفتار هر دونه رو کار. این میگه که من نکردم اون همه کرده از این چیزی کشف نمیشه یکی از این بیشتا دروغه دیگه این میگه بله اون میگه نه خیر یکیش دروغ بر این کار بر دو تا حرف اضافه یکی این و این کار بر این کار بر برای تاکید میامده دو حرف اضافه بر این کار بر نیست جایش تا که تنگیدل دل تنگی دل اینجا معنی عجله کردن و بی فرصتیه که تنگیدل دل آرد خرات را به خواب که در این خواست تاب نباد کرد برای اینکه عجله کردن خرد رو خواب میبره نگه کرد باید بدین در درد نخست گواهی دهد دل تو گردد درست میگه باید به دقیقه در این واقع نگاه کرد و اگر آدم درست نگاه کنه دلش گواهی میده که کدوم درست میگن کدوم درست میگه. ببینم که از این دو گناهکار کیست به پادفته بعد سزاوار کیست ببینم اینجا ببینم یعنی دقت کنم با نتیجه بگیرم بفهمم چه جور سوالی هست خلاصات خدا فرامیزم نخیر خلاص الان توزیع ببینم جزیم دو گناهکار چی است پادفره بعد فزاوار چی است پادفره یا پادفرہ یا باد افراح و باد افراح باد افراح مخفف دیگه مثل راه و رحت چاه و چه باد افراح و باد افراح میشه مخفف میشه باد افراح که برای شعرها این دو جوز داره یکی پات پاد در آغستایی بوده تائیچی یه داستان هست که گفتن به معنی زیتون خالص این تائیچی در فارسی شده پاد پاد زهر پاد زهر یعنی دارویی که برای به مصروح شده میگن که زهر را از بدن ببره زهر و پاد زهر گاهی این پاد در فاسود پا پا زهرم میگن پا زهرم میگن پاداش پاداش بوده پاد دهشنه دهش نه. یا دهش از دادن اون چیز کلامی که پات دهش یعنی چیزی که در مقابل اون طرف میده. جزا. پات دهش در فارسی شده پاداش و پاداشن مردوش پاداشن و پاداش پاداشن و پاداش به معنی جزای خوبه. وعنی جزایی نیکی خودی که آخر برش و کارمند میدن به عنوان اینکه خوب خدمت گرده این چه پادراش پادفراه بکت پادراشی یعنی سزایی بد جزایی بد پادراش و پادفراه هست یکی دیگه هم داریم پاسخ پاسخ در حقیقت پاد سخن بوده این یعنی جواب من حرفی میزنم سما جواب میدید جواب میگن پاسفلی پا سخن زنده سخن پادفراه یعنی جزای کار بد به پادفراه بد سزاوار کیست ببینیم گناتار کیه و چه کسی مستحق مجازاتی وادفراح خودشون خودش بعدی رو ها این پادافراح بعد یعنی پادافراح کار بعد حالا پادافرا خودش بعدی یعنی جزای بعد این بعد به معنی اون عمل به،, به،, به،, به مجازات کار بعد چه کسی سزا ریکشی کرد پیش خودش بدان بازجستان بازجستن یعنی تحقیق کردن دیگه دقت کردن بدان بازجستن همین چاره جوست چه کرد که چه راهی زنک گفته ما درگیر شدیم دیگه اومد و منو کسبی دو مای منو کند و صورت منو تراشی شد این لعقل دستش به پانوم رسیده میگه آمد دست سیاهش رو بو کرد میسکنیم رو بازوش رو سرطاقهاش رو کرد در حالی که از سودابه بوی می و مشک ناب و بوی گلاب میاند و اگر این دوتا با هم تسبیده بودن به هم و دست به شده بودن و اینجوری که زنک مدعی بود او رو در آغوش گرفته بود و کشاکش زیاد شده بود موهش کنده بود که موهش قالیه و مشک رو عط رو دیگه گفته بودن قبل. دست بو میداد کنش بو میداد دید میبینید بدان با جستش بهدان بازجون همین چهار دوستست ببیید دست سیاه غشت بر و بازوی و بر اینجا رو میه جاهایی که بصددم کسی رو بغل میکنه این دو هم می کسبه اون رو میگن بر در بر گرفتن در بغل گرفت بر و بازوی و سرو بالای اوی سراسر ببوید هر جای میه ز سودابه بوی می و مشک ناب هم یافت کابوس و بوی گلاب نبود دست آوش بران بوی نشان پسودن نبودند در اون پسودن یعنی لمس کردن در اصمالی دن هست لامسر میگن هست پساوایی یا بساوایی یعنی هست قمی گشت و قمی با نسبت یعنی خمگی غمین قمی گشت و صود را خار کرد بعد کفت هیچ کفت پر گم شماسه نمید دل خیش را زود کرد نراحت تو در دست زنک به دل گفت باز تو دلش میگه ولی باز دیر راه نمیده حالا فوری خودش عذرای خانم رو میاره جلو به دل گفت کین را به شمشیر تیز بباید کنون کردنش ریز ریز میکنی بلا فاصله بعد زهاماوران زان پس اندیشه کرد. حسه هاماوران براتون گفتم پادشاه هاماوران راوز گرفت زندان کرد و صداوه زنش بود اول که زنک گفت و اینا دست بد دارن در حق تو نرو به این مهمونی قابوس مغرور بود فکر که از کسی جرعت نداره در حق شاهنشاه ایرانی هم چه کاری بکنه بعدا باورش ندره رفت و گرفتم هفتش کردن اولا سوداوی گفته پدرش بوده ولی گفت بعدا بلند شد رفت باید پلی شوهرم بشه شوهر کردن هر جو شوهرم هست من هست رفت زهاماوران پسندی چکن که آشوب خیزت از آزار و درد وقتی آزار و دردی در آدم باشه دلش آشفته میشه دیگه این فکر میکنم اون فکر میکنم. میکنم این کارو بکنم این کار بکنم. بکنم و دیگر به که در بند بود برای اون و پیون بود پرستار سودا به بود روزو شن. وقتی هیچ قومی، هیشی، کسی، هیچ کس پلوش نبود کردنش یه اتاق درازد بودن تنها کسی که خدمت او رو میکرد بود و شبان بود و کار او رو میکرد و مونسش بود، سودابه بود به پیچی آن رنج و نک لب از یه طرف این کاریز بشتی که کرده از یه طرف اون صابقه این که داشته اینا مراحتش میکرد ولی چیزی نگود سه دیگر یکی این اصلا مهمتره که یک دل پر از مهر داشت خانه ما دوست کنید از او هر بعد اندر گذاشت اندر گذاشتن همون در گذاشتن یکی در گذاشتن از گناه کسی یعنی او رو حف کردن یکی چون بود باید هر بدی کنگو چست دوستش کشتی گفت هجران تو گرچه چه عمرکاه هست زیبایی چهره اوزخاه هست <محن> زیبایی چه اوزخاه هست زیبایی چهره چه اوزخاه هست کار بعد سه دیگر که یک دل پرازمش داشت به با استزو هر بعد اندر گذاشت اندر گذاشتن سر نظر کردن شمش. چهارم چهارم که از اون داشت خورد به چاره غمه خورد نتفانسه پرد البته جو خب بچه مادر میخواد اما بچهی کیک کابوس کرد بچهی بنده هست که مادرش نباشه بیلون و سیجون و اون به ما از بچه به دنیا میامد میوردن اصلا جای دیگه مطبیش میکردن گفتم بنابراین این امتی مادر اما وقتی میخواد آدم دنبال یه بحانه ای میگرده که خانمو ببخشه و عققش کنه بچه های درشت مادر بازید چارم که از اون بودکان داشت خورد به چارق همه خورد نتانسه خورد قصه بودکان خورد رو با چاره یعنی حیلگری نمیشه چیز کرد در این حال میدید این, این آشوبی که تو ذهن این هست میگه خب این زنک مناش بازید اما اولا به ما خدمت دوبامی که دوستش دارم که بکش دارم از این همون جوانو این هم گونا که زن یه همسی طعمت زشتی رو که مایه برباد درتم سر بچه میشه و آخرم شد آخرم سیاقش بخواهم این دلیل این عشق ناخرجان کشته شد دیگه آخرم شد بگه که از این که این جفون بیگناهه از آن پار بود بیگناه خیرتمندیه و اون بدعا نمیزه شد بعد بهش که فکرش نکن حرفم رو از این کسافت و از این فضاحت کسی حرف نیست. به دو از این خود میندیش ایش. یعنی که فکر این سحنه این کار زشت نکن حشیواری و رای و دانش بسیاره یعنی حشیاری و رای معنی خرده نگه خیرد ار از اون رعی رای معنی خرده حشیواری، فارسی همه هوشی... اون رعی عربیه حشیواری و رای و دانش بسیاره حشیاری و خرد و دانش برای خودت آماده کنن من کن یاد از این نیزو میگه اصلا فراموش بود. یاد این... کنون در چاره این دو بارید جز گری نشنود آب من نزدشا شود تیره و دور ما زگاه و گفت زن من تو را بنده و فرمان رایت ترم کرده هم داروی خوب خوب چشم شد داروی داروی خورد زن بیافتاد و از او بچه اهل من دو بچه چنان چنان چون دو بچه چنان چون بود دیبزار چه باشد چدار از جادو نجات یکی تشت زلین بیاورد پیش به آن سخن با پرستار پیش نهاد اندرو بچه اهلیند فروشید و بفگند و جامتند. نهان کرد زن را نهان کرد زن را او خود بکفت بکفت بسیار دو بچه دارم حابستنم از پادشان حالا بچه شو می رسید یه وقتی که چودانه صداقه کوگشت خار، نیاویختن در دل شهریار یعنی نتونست در دل اون چنگ بیندازه و دل قاچه ها بگیره یکی چاره جستند در آن کار زشت این زشت صفات اون چاره است میگه یک چاره زشت در این کار فکر کرد یکی چاره جستند در آن کار زشت زکینه درختی به نوی بکش یعنی از نو یه درخت کینه دیگر باش چیه؟ دیگه آره؟ آره آره دیگه زنی که؟ خواهی الان چاره رو این, این معنی بد رو نداره بلی تو شانامه داره چاره وقتی اینگر همیشه تو شانان وقتی میاد همیشه فنی سی برد اینجا میبینید که یکی چاره جستند دران کارزه سکینه درختی به نقری بکش زنی بود با او به پردندرون پردندرون یعنی پرده اندرون با هم مخفف شده دیده. این در حرم سراب زنی بود با او به پردندرون پر از جادویی بود و بند و خسون این میگه جادو بود و مکر و افسونه بسیار میدونستید گران بود و اندر شکم بچه داشت مابستن بود همین از گرانی به سختی گذاشت یعنی خیلی شکمش گندسته بود بارش خیلی سنگین شده بود به طوری که به سختی روزگار میگذارند گذاشتن یعنی گذارند از گرانی یعنی از سنگینی بچه به سختی زندگی میکن به دو راز بکشاد و زو چاره جد سوداوه به زنک سر خود رو گفت. گفت من حضیه این است که خلاصه به من بیمه شده و من باید یه فکری بکنم یه چارهی بکنم اما تو اول باید با من خیمان بکنید این سر منو آشبار نکن و قرار بگذاری بعد ما پول میدم چه میدم چه کار میدم. به دور آزبون شد و زون چاره جز که آغاز پیمان خواهم نخوض یک اول باید باید من پیمان رو چون پیمان ستت ذره بسیار داد وقتی پیمان رو گرفت یعنی زنن باش موافقت کرد و فیمان بست پول زیاد داد سخون گفت از این در مکنه هیچ یاد گفت بهش که هیچ حرفی در این باب نزن یکی داروی ساز که این کنی، توهیمانی راز من نشکنی داروی ساز که بچه تو بیندازی بکندن و نی انداختن سخت کردن داروی به ساز که این را یعنی این بچه رو بیاندازی توهیمانی و راز من نشکنی چیه؟ زنی که آبستنی؟ این که میگه تا دا... سوگاوه هستم آبستنی؟ دروق میکوفت چی دارم؟ <تصفيق> زنه که فدی کرده که ولی بله. جای اون بچه شو مندازی؟ <تصفيق> من. یکی داروی ساز پیم بفکنی توحیم و راز من نشکنی که خالی بشه و راز منم پینام کن مگر چین کی، چونین بند و چندین دروغ بدیم بچه قانتون گیرت کنون شاید مگر یا یعنی شاید قیده تردی این چونین پند و بند و چندین دروغ یه چونین حیلگری و این همه دروغ ها با این بچه های تو یه روشنی بگیره یعنی ارزشی پیده کنی میدید این بچه های به کافو سویم که این از من هست بچه چون این کشته ریمن آهرمن است. آهرمن آهریمن ریمن هم همون اهریمن در حقیقت مخفف آهریمنه اینجا معنی پلی و زشتو یعنی آهریمن پلی. یا آقایی بیچاره نبینم زنده است یا مرده اگه باشه خیلی پیه باید باشه از من بزرگتر دم اسمش بود فرهنگ نخهی باید خوشش نمیاد از این احساسات ملی داشت مخواست فارسی چیز کنه اینا رب نام خانمدگیشم اولاد سید فرهنگی فرهنگ ریمن نمیدونی فرهنگ یعنی چی نمیدونی به نظرشون از اون که این خشنگ چیز ریمن بعد ملک و شوهرها که پسر جان این چه است برای خانواده خود انتخاب کرده ریمن احریمن است اینا و, و اون بچه یه ذر شیرینقل هم بود با اینکه که قلم میزد و چیز مینوشت نه یه خود شیرینقل بود بعد رفت آخوند شد سینه مثلا سی و پنی سالگی سینه سالگی سی و پنج سالگی یعنی در سینه که به هر آدم هرچی میباست می بشه شده دیگه حالا بنده برم احمام سردزارم و خیلید تلیلی خیلی، حتی ندارم که خوبه یا بدا، اما اصلا سه نیستی چورت داریگی هست فرهنگ سه وقت پایمشون اول فرهنگ حکیم باشی بود بعد کرد فرهنگ نخهی، بعد کرد فرهنگ ریمن دوباره مثل اینکرد فرهنگ نخهی، بعد هم رفت آخون شد احمام گذاش ما چون این کشته ری من است به کاووس بگم که این بچه مال منه این رو من کشته یعنی سیاوش مگر که این شواد بر درست اینجا درست بشه بر سیاوش یعنی به گردن او ثابت بشه درست شدن یعنی ثابت شدن مگر که این شواد بر سیاوش درست کنون چاره این به باید جمهورت چاره همه جا چیه؟ چرا همه بادم سوزانی بسیافش برگیشه؟ برای همین کسی؟ گفتم دفت پرجام گفتم بهی این مسائل عاطفی از امور آتفی یه دسته 180 درجه تغییر جهتی یعنی همون عشق سوزانی که پیدا کرده که میگه من شب خواب ندارم دارم درم درمده چیز میکنه دیگه خیلی. اون اون حالی که به اون ترتیب داشته یه مرتبه تغییر ماهیت میده تبدیل میشه شد. نه خیلی ببخش نیشه دره بیدیم <تصفح> مگر که این حالا این که تاریمیست حالا داستان رو دوش کنم برکنه معامله نیست چیزم سیاهاشم میدونسته این زنیست که هره شبه بنچه کسی دیگه گرفتاری پولید مگر این شود بر سیاهش درست شاید این قصه بچه انداختن به گردن سیاهش ثابت بشه کنون چاره این بباید جوز ای بکن گر این نشنود گره این پادچاه اینو بشتوجه نکنه آب من نزد شاه شود تیره آب من تیرم چنی آبرون میره دیگه نش یعنی نشنود آب من نزد شاه شود تیره و دورمانم زگاه گاه یه میخورد زن به دو گفت زن من تو را بندم به فرمان و رایت سرف کندم تو شب گیره شد داروی خورد زن بی افتاد از اون بچه احل من چون زنک جادوست نگه بچهشم بچه, بچه احل منیم دو بچه دو بچه, دو بچه چنان چون با بعد دیوزاد مثل بچه دیو، مثل بچه شیطان چه باشد تو دا دارد جادو نجات؟ این که بچه ای که از جادو نجات داشت نیست های چی دردید؟ نه نه گفت که از اون مسخره دربار سلطان محمود تلخک که زنش دایده بود گفتش که سلطان ماهون دارش پرسی خب زن چیزه؟ که خب زن خوغرات چی میزد؟ یا پسری یا دختر؟ تو مگه زنان ما چی میزم؟ گفت هیزی ناهنجاوی که تمگری بیگونم از کنن که حالا بچه که از جادو نجاد داشته باشه میگه که چی میخواه میشه دو بچه چنانتون بقدی زاد چه باشد تو دارد ز جادو جاد یکی تاشه زرین بیاورد پیش به گفتن سخون با فرستادش نهادند در اون تاشه بچه‌ی عهد من بعد خروج شد دو بچه‌م پاتون صدا فریاد می‌خوره یه دو مطلب دو بچه‌م دو بچه‌م ها مطلبش ایده دو تا بچه بوده بله دو اله بوده این دو اله را براتون بگم که این است. بر فارسی خیال کردن که دو تا بچه که باشیم که دو غلو بعد سه تار میگن سه غلو، چهار تار میگن چهار غلو، پنج تار میگن پنج غلو این درست نیست اولا کلمه ترکی دو غلو اصلش هست دو غلو. و لو یعنی توأم میخواد دو تا باشه میخواد سه تا باشه میخواد پنج تا باشه میشه دوقلو و ما در فارسی کلمه داشتیم که در فرانسه و انگلیسی هم اسم هست جومو و جومل بر ازش وقتی این که مزکر باشی میشه جمع. در کرمان بگه بچه تو هم میگن جمل در کرمان میگن جملو در گرد میگن جمل همینی جمل یعنی بچه تو هم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 یعنی دو تا بچه گیا؟ بله بله اینو از ترکی گرفتن دغلو رو نهان کرد زن را و زنک نخوش بوده وشه انداختون دیگه یه زنک پنهان کرد و خودش گرفت خوابید توی رختخواب، خواب فقانش آمد به کاخ از نها. صدای پریاد چند بقید. اون چیزی دیگه هست اون قل اون شاید مرات قل به سنگ مثلا اون رفت به این یک چهار قل هم داریم چهار تا سوره از سورای آخر قرآنه چهار تا سوره که با قل شروع میشه قول یا ایوها الفافرون را عبد و مات عبدون نمونن و امسال اینا بعد میگن چهار قول خوندن برای حفظ اشخاص نه چهار یعنی این چهارت صورهی که با قول شروع میشه که خطاب به پیغمبر اکسم قول یعنی بکن یعنی ای پیغمبر بکن این, این چهارتا بب معروفه که چهار ولی اینا ربطی که این نه بگو و ایوان پرستار چندان که بود که و نزدی که سوداوه زود دو کودر بلیدن مردبتش از ایوان و کیوان ایوان کی و که ایوان فرقان برگذشت چو کاوس از ایوان خروش بلرزید در به بلهاد بور بپرسید و گفتن با شهریار که چون گشت بر خوب را پروز داد گشت و آن شب نزد نزر هیکزم و شبگیر برخاست و آمد دشم بر آن سودا سوداوه را خوفته شبستان سراسر برا شفته تو دو کودک بر آن گونه باتشت زر فگنده و خاوی و خستجگر جگر ببارید سودا و از دیده, آب از دیده آب و دو گفت روشن ببین آفتاب همی گفتمد کو گفتم گفتمت گو چه کرد از بدی و گفتار او خیدعی من شدی دل شاه کاهو شد بدگمان برفت و پرندشه شد یک زمان همین گفت که این را چه درمان کنم نش, نشاید که این بر دل آسان کنم از آن پس, از آن پس نگه کرد کاهو شا کسی را خی کردی نگاه به جست هر سو بر خیش خوان بپرسید و بر تخت زرین نشانی زرین زرین نشانی ز سوداوه و رزم ها ماوران سخ... سخان گفت هر بر... ترگون... گونهی بکران بعدان تا شنود بعدان تا آگه از کار اوی دانش برارن پر کار او وزان کودکان نیز بسیار بگفت بسیار گفت بسیار گفت نهفته برون آورید از نهفت ام. ام از زید و سلاب برداشتن برا کار یک افته بعد اون سرانجام گفتند که این کی بود گفتن کی بود سرانجام گفتند کی, کی بود تجایزه به جایی که زهر آگنی می بودن تو کودن زبند زبند کسی دی دیگرن نه از پشت نه زیر گر از گوهر شهر شخ یاران بودی از این زیچ جز... ها زیچ جستن آسان بودی نه پیداش در در آسمان نه اندر زمین این شگفتی گفتی نشان نوشوند نوشان اون یاد اندیش در پاپزان، نو پاپزان به انجمن. نه نه داش گاووس با کس نگفت. همین داش بوشیده اندر نهان ما ببینید باز هر چه رسوایی و کسافت میاد هیچ احد نمیسن دلش نمی dere کسی نید. بله. سوالش به ایوان پرستار چندان که بود پرستار خدمت بزاریه گفتن به ایوان پرستار چندان که بود به نزدیک سودابه رفتن دو کودک بدیدن مرده به تشت از ایوان به کیوان فغان برگذاشت کیوان ستاره زوحله و از ستاره زوحل سیاره زوحل دورترین سیاره است که گذشتگان میشناختن البقرا اون و, و پلوتو اینا تازه کش شده قدیم ستاره هایی که به دور خورشید میگشتن و قدما فکر میکردن که به دور زمین میگردن حالا اون بحثو کار نداریم آخرینش دو حل بود و همین دلیل میدوننن که اون ستاره ایست بلند خیلی یعنی فاصله خیلی دوره از همه دورتره اینی که میگه فقان به کیوان رسید یعنی خیلی صدا شدید بود که تا, تا زهل راه، از ایوان به کیوان فقان برگذارد بشنید کافوس از ایوان خروش ایوان همین همواره و معنی کافه ها معنی قصر توجه دارید چوبشنید کافوس از ایوان خروش بلرزید در خواب و بنهاد گوش بنهاد گوش یعنی گوش رو تیز کرد بپرسید و گفتند با شهریار که چون گشت بر خوب رو روزگار به اینا از من بچه اندافتم دیگه خدمتوارام به پادشا گفتن که بله خانم خون ناخوشا و گفتن گفتند با شهریار که چون گشت بر خوب رو روزگار روزگار به این خانم چه گذشت؟ داشت همین گشت رو آن شب دم شبگیر برخواست و آمد رو جم شبگیر گفتن صبح که هوا هنوز تاریک بران گونه سودابه را خفته دید. شبستان سراسر برا خفته دید. دو کودک بران گونه باتشت زر پکنده به خاری و پست کرد جگر باب هنی بس یعنی دو تا بچه‌ی مرده به تشت زر افتاده بودند به اون صورت گریهش هم میاد خانم به واری چوغا اشیده آ اینا چه جوریه ها حتی این محافظ شات وادیو حسین نای تو چات زار زار گریه می‌خاست این <تصفح> چه جوری میشه هنری پارا دو باری و از دیده آب به دو گفت روشن ببین آفتاد بفرم، من هی گفتم اونش نمی کرد همین گفتم از پوچه کرد از بدی به گفتار او خیره ایمن شدی خیره یعنی بیهوده ایمن شدن یعنی در امان بودن یعنی به گفتار و خاطر جمع دل شاکا بود شد گمان برفت و پرندیشه شد یک زمان و میگفت این راه چه درمان کنم نشاید که این بر دل آسان کنم نشاید یعنی شایسته نیست از آن پس نگه کرد، خواه جا... کسی را که کردی به اختر نگاه کسی که به اختر نگاه میکرد، یعنی منجم، ستاره شناس خواست به جستو، میگه کسی را یعنی هر کسی رو هر کسی رو که بود، تمام ستاره شناس رو خواست به زهر صور بر خیش خواند بپرسید و بر تخت زرگی میشان. بپرسید یعنی احوال پرسید. یعنی پرسی کرد یعنی احوال پرسی یعنی مهربانی کرد بپرسید و بر تخت زرین نشان بهشون اعترام گذاشت سودابه و رزم هاماوران سخان گفت ترگونهی بیکران رو اصار همه رو گفت از سودابه و از جنگ هاماوران اینا بدان تاشوند آگه از کار بود برای اینکه جزیات مطلب رو بدونند، که قضايا چی بوده تا ما حالا این مشکل بابا رو حل کنه بدان تا شوند داغه از کار اوی به دانش برانند هرگار او پرگار همون که میدونید وسیله ای است که از خیلی قدیم برای رسم دایره به کار می و با حافظ خیلی راجعه پرگار هر صده که پرگار در این حال هم ثابته یه پایش ثابته یه پایش هم میگه می که دل چو پرگار به هر سود دوران میکرد و اندران دایره سرگشته پا بر جا بود مثلا آسوده بر کنار چو پرگار میشدم دوران چون نقطه آقابت در میان. اما در دیوان خاجه پرگار منی جویی و تدبیر و احیانا هیله به کاره میخواید بهتشم بنویسی میگه گر مساعد شودم اگر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آقارمش باز به پرگار دیگر اینه اگر روزگار با من مساعد بشه با یه کلکی دیگه ای با یه هیله دیگری گیرش میارم طبعاً بعضی جاها، یه لغتی ده تا معنی داره ممکنه در ده مورد، به ده معنی مختلف به کار بره اینجا به دانش برانند، پرگار او، یعنی چاره کار او رو از روی دانش بکنه. خوزان، کودکان، نیز، بسیار گفت قرار نبود که راجبه این کسافت حرف بزنند، ولی چاره نداشت دیگه الان مجبور بود میگه راز نهفته رو از نهفتی اونو بود گفتم که نصفایی نمیونه میگه اخترشناسان همه زیج و سلاب و سلاب مخفف اوسترلابه اوسترلاب هم اصلا لغت یونانیز قسمت اولش همون رو یعنی ستاره است استولاب وسیله ای بودی که منجمان قدیم داشتن دوربین نیست تا چیز ربکی دوربین ندارید یک چیزای حساب هندسی میکنه، و یه حلقه ها و چیزایی و بعضیش خیلی خیلی ظریف می ساختن مثل این ساعت های و نمونه برای اینکه ببینید و حتما برید ببینید برای اینکه زشت دیدن توی ادب باشید و با مثلا استولاب بخونید به کلاس و ندیده باشید چیز جویه. در برهان قاطع فرهنگ برهان قاطع چاپ دکتر معین که در همین بخش خودمون هم هست کتابونه کتاب کوچولوی کتاب خونه, خونه N.E.S اونجا هست برهان قاطع چاپ دکتر موین رو میگیرید لغت استرلاو میارید اونجا تصویر داده و چیز داده و اجزایش شما رو گفته که چی داره و انکبوت و زاپل علق و جزیاته شو میگه که حالا نمیخواد شما رو یاد بگیرین ولی به اقل دیده باشین که این که میگن استرلاف یا فلان با رمب استرلاف کشف کرد بدونید که چیه استرلاف که با سادم می ریستم زیجم زیج اینا جدول برای محاسبه جدول های است برای همین محاسباته اینا البته بیشترش جزء احکام نجومه یعنی استرولوژیه علم نیست اینا. نظری پیشگویی از طریق ستارگان گان اینا شبه علمی که در قدیم اون علمی که شعبه‌ای از ریاضی بهشون گفتن علم نجوم که الانم به فرنگی بهش میگن استرونومی شغبیز از ریاضی که حالا توسعه زیاد هم پیدا کرده نجوم و وز... رادیویی هم پیدا شده که انواج رادیویی رو کنترل میکنه رادیو استرولوژی استرونومی پرداش و این طالبینی و این بازی ها رو، رمالی و طالبینی و این بازی ها رو بهش میگن استرولوژی و در فارسی هم بهش میگفتن علم احکام نجومی که اصلا علم نیست اون, اون چه در شاهنامه و در کتاب های دیگه حتی تا دوره های شاه عباس اینا بهش اشاره میشه علم نجوم نیست، احکام نجوم نیست میخواستن همه مردم در چون که از آینده با خبر بشن اینا هم یه چیزایی میگفتن خب پنجه درصد هم با آینده تتکیف میکرد دیگه پنجه درصد راست در اینه پنجه درصد بود در. همه زیج و سلاح برداشتن بران کار یک هفته بگذاشتن یک هفته در اون کار وقت گذاشتن سرانجام وضعیت یک هفته گفتند که این که کی بود که جایی که زهراگنین یعنی می بود میگه چطور میشه که تو زهر بیزی توی زهر توی اونجا تبدیل به می بشه نمیشه که همچیزی غیر ممکنه آگنی یعنی؟ آگندن یعنی پرکر مثلا فرض کنید که درخت چه میدونم زردالو بخاری بخواهی ازش گلابی بگیر نمیاد که که جایی که زهر آگنی میبود دکودک زبند کسی دیگره بند اونجو یعنی باز جادو برد کودک کودکت بند کسی دیگر هم نه از پشت شاه هم از این مادر هیچ میشکنی یعنی پدر مادرشون هر دو چیز میسی گر از گوهر شهری آران بودی از این زیچار جستن آسان بودی این خیلی بامزرست این مدر میگه اگر اینا شاهزاده بودن خیلی زود چیزی کردم برای اینکه شاهان در آسمون ستاره دارن ولی بچه های که ها که ستاره ندارن. اینا ستاری ندارن تو آسمان گره از گوهر شهری آران بودی از این زیج ها جستن جستن یعنی پیدا کردن آسان بودی نه پیدا درویش در آسمان گداد لازم پیدا نیست درویشو اردوسی به معنی سوفی به کار نیمبره به معنی فقیر و چیست نه درویش در آسمان نه اندر زمین این گفتی بدنم آدم گدا نه در آسمان تطره داره، نه تو زمین کسی محل سک بهش میزره <تصفيق> نه نشان بدندیش ناپاک زن بگفتن با شاه بی انجامن نشانی مادر این بچه هرم دادن که زنی است اینقدر مثلا سنش اینقدر هکلش اینقدر قد میشید رو بفهمشون کنه بی انجامن یعنی در خلوت شاه